از عالمین و صلی اللہ علیه و آله تاکرین حازا باب اعمال صفت المشبهت بسم الفاقل این باب بعد از باب اسم فائل و اسم باب عمل دادن به صفت مشبهه به اسم فائل است حازا باب و اعمال صفت به اسم فائل صفت مشبهه و شبیه شده به اسم فائل از دو جهت شباهت این صفت یعنی این مشتق رو به اسم فائل قائل شدند یعنی اشبهت از صفت و و اسم الفائله منوچه این از دو جهت شباهت داره به اسم فائله العبد. اولیش این مثل هم صفت مشبهه مثل اسم فائله است فدلالت دلالت الحدث است و فائله مثل اسم فائل. دلالت بر حدث با فاعل حدث میکنه یعنی چطور قائم دلالت بر یک ذاتی میکند که متصف به صفت قیامه حسن هم دلالت بر یک ذاتی میکند که متصف به صفت حسن است زیبایی است درست دومی و سانی. انها ان نهات و تجمع اینکه صفت مشبهه میتونه تسنیه شه میتونه جمع بشه و تو مذکر و تو انثیت میتونه مؤنث بشه مزکر بشه مثل, هم، مثل اسم فاعل یعنی میتونیم بگیم حسنون حسنان حسنونه حسنتون حسنتانه حسنات حسنت مثل اینکه میگیم زارگون زاربانه زارگون زاربتون زاربتانه زارگون پس بنابر این در دلالت بر حدث است و صاحب حدث من التصف به الحدث معنای مستری و در تسنیه و جمع و تذکیر و تنیس صفت مشبهه عین اسم فاعل است فرقشون را هم در جلسات قبل داشتیم که یکی از فرقهای اساسی و ذاتیشون اینه که اسم فاعل دلالت بر حدوث میکنه که اون حدث حادث شده اون معنای مصدری حدوسی است اما در صفت مشبهه سروتیه دلالت بر دوام حالا صفت مشبهه رو اول تعریف میکنه نگاه کنید صفتون استه سن جر و فاعلن به ها المشبهه تو اسم الفاعله المشبهت و مبتدای معخر یعنی الازی اشبهت یعنی علتی اشبهت اسم الفائل مفعول المشبهت است که اسم فائل تکیه کرده به هل و عمل کرد علتی اشبهت اسم الفائل اونی که شباهت رسانده است بگو اسم فائل را چیه؟ المشبهت و اسم الفائله اسم الفائل مفئوله المشبهتو المشبهتو هم مبتده صفتون خبرشه مقدم. صفتون است اونی که شباهت میرساند به اسم فائل است که این صفت رو دارد این جمله بعد از نکره صفت صفتی که استوه سنجر و فائل این به استحسنه فیل جر و فائل فا نائب فائل استحسنه و نائب جرم اضافه شده به فائلش نیکو شمارده است جر دادن به فائلش مجرور شدن فائلش اینجا مستر مجهول اضافه شده به نائب فائلش. یعنی فاعل یعنی نیکو شمارده است مجرور شدن فائل معنن معنن تمیزه مجرور شدن فاعل از چه جهت میگه از جهت معنا فاعل معنوی است معنًاً خب مجرور بشه فاعل اونم فاعل معنوی نه فاعل لفظی به به خود این صفت مشبهه متعلق است به جر مجرور شدن فاعل به خود همین صفت مشبهه به صفت صفت مشبهه در اسم فاعلگی یادتون باشه در اون مراد فعل قلبه و همچنین محمود المقاصده شد گفت وقعد یضاف و, قدی و, زاف و ز... اسم مرتفع معنن که محمود المقاصد الوره او تو محمود المقاصد الوره او که اصلش بود محمودتون مقاصده بعد همینطور اومدیم تا رسید به محمود المقاصد پنج صورت درست در اونجا گفت امکان اسم فائل لایجوز و فیه آزاد گفت که اسم فائل باشه درش اضافه شدنه به فائلش جایست علتی رو ما اونجا خدمت شما عنوان کردیم گفتیم که علتش اینه که اضافه اسم فاعل به فاعل خودش شبهه اضافه شیبه نفس رو داره یعنی وقتی شما میگید زیدان، زاربان، ابوه و اضافه میکنید حالت اضافه شیبه نفس پیدا میکنه شبهه اونو داره شبیه به اونه و از همه مهم در اینه که امتباس پیش میاد یعنی شما وقتی میگید زیدون زار بن ابو بعد اضافه میکنید میگید زید بن زاره با بیه معلوم نیستش که چی ها این اضافه شده به فائلش یا اضافه شده به مفعولش لزوم ملتبس میشه درست اما در صفت مشبهه اینطور نیست واضح المسالک اول کتاب خوندیم واضح صفت مشبهه بود دیگه یا حسن الوجه حسن الوجه حسنش چی بوده زیدون حسن الوجه؟ بوده زیدون حسنون وچخووو بعد زمیر وچخوو را آول نیم کردیم فعال حسن و جای زمیر الفلام گذاشتیم بعد اون اسم معارف الفلام رو منصوب کردیم چون نیه نمی شد بشه اسناد را از او تغییر دادیم شد زیدون حسنون هو ال بعد اضافه کردیم به شبیه به مفعول شد زیدون حسنول وجهه شد و مجازیت در این کلمه کرد. بدام کن نگاه الان که من میگم زیدون حسنول وجهه این حقیقت است یعنی چی؟ یعنی زید زیباست صورتش یعنی زیبایی که مال صورته دادیم به خودش ها؟ اما وقتی برمیگردیم میگیم چی؟ زیدون حسنول وجهه زید میشه مبتدا حسن میشه چی؟ خبر اون موقع فائل حسن کیه؟ یک زمیریه که برمیگرده به زید یعنی حسنی که مال وجهه ما نسبتش دادیم به کی؟ به زید یعنی چیزی که مال جزئه نسبتش دادیم به کل اینو بهش میگن چی؟ مجاز یعنی در صفت مشبهه قطع اسناد و مجازیت چیه؟ درسته در صفت مشابه. مثلا اگر می گفتیم که حازش شرح و واضحتون مساله که ها حازش اول کتاب واضحتون مساله که یعنی چی؟ یعنی این شرح حلبیه شرح سیوتی واضحتون مساله که ها مساله که ترقش است. وضوح رو نسبت داده بینیم به مساله که حقیقت بود حالا مسالک و طرق رو از فایلیت میندازیم و خود شرح و خود این کتاب سیوتی رو میکنیم فایل واضح میگیم حاضر سیوتی حاضر شرح واضحل مسالک واضحل مسالک واضح رو دیگه نسبت میدیم به شرح یعنی چیزی رو که مال طرق شرح بوده نسبت دادیم به خودشن مجازیت در صفت مشبه دفعه پیدا میکنه اما در اسم فائل بگید این تحقق نیست این تحقق نیست درست صفتون اصطح زنجر و فائلن معنن ها المشبهت و اسم فائله پایین نگاه کنید میگه حاضا باب و اعمال از المشبهتی از صفت و المشبهت و بسم الفایل صفتی که المشبهت و یعنی تشبیح داده شده است شبیه کرده شده است به اسم فایل اسم مفعول میخونیم و باب تفعیل موقعی که با داره المشبهت و به اسم الفایل اون بالا المشبهت و باب افعاله یعنی شباهت رسانده است اسم فایل را بیاید فایل خوب نگاه کنید اول که به سفت مشبه یه مقدار نیازه به تدبر دارد صفت اون استوحسن جرفائلین معنن بها سفتی که نیکوش و شده جرفائل معنوی به آن چون میدونید دیگه ما وقتی که اضافه میکنیم حسن رو به وجه وجه دیگه فاعل نیست بلکه شبیه به مفعول شده فاعل بوده ولی الان قطع از فاعلیت پیدا کرد و شبیه به مفعول شده و اضافه کردیم جر و فاعل به ها بعد از تقدیر تقدیر یعنی فرض بعد از تقدیر تحویل اسنادها همون شکلی رو که ما گفتیم میگه بعد از فرض اینکه اسناد صفت مشبهه رو تغییر دادیم تحویل یعنی تغییر بعد از فرض تغییر اسناد صفت مشبهه الغو از اون فاعل الاز زمیر ضمیر ها به زمیر موصوفش منظور از موصوف موصوف لغوی است یعنی اون کسی که این صفت مشبهه مال اوست زیدون حسنون وجه او زیدو میگیم موصوف یعنی کسی که زیبایی مال اوست ما حسن رو از وجه قطع میکنیم و اسنادش میدیم به کی به زمیر موصوب یعنی زمیر وچهو اونو میاریم در حسن مستطر میکنیم اسناد رو از وچه قد میکنیم و به زمیر زید میدیم یعنی زمیر مضافان بعد به جای اون زمیر چی میاریم؟ الفلام میاریم بعد اون کلمه رو منصوب میکنیم شبیه به مفعول بعد اضافه میکنیم بعد زیدون حسنون وچهو بعد زیدون حسنون هو و وجه بعد زیدون حسنون هو الوجه ال وچ بعد زیدون حسنون هو الوجه ال وچه بعد زیدون حسنول بشه از بعد تغذیره یعنی بعد یعنی بعد فرض تحویله یعنی تغییر اسناد حسن رو از اون وچ یعنی فائل به زمیره موسوفش هیه این هیه رو گذاشت که بگه که این دوتا محتدا خبرند این زمیر فصله سفتون از توحسنه هیه المشبهت و اسمل فائله اینو بهش میگن چی؟ المشبهت و اسمل فائله به این میگن اون چیزی که شبیه به اسم فائله است اون اسم فائلین الافلام نخواد اسمال فائلی المشبهت و اسمل فائله اونیه که شا شبیه شده شباهت رسونده به اسم فاید میگیم شما دو تا قیل زدید یکی قیدیه که جناب آقای ابن مالک زند گفت صفتون یعنی مشتقون استوزنه جرفایده معنوی به هم نیکوشو مرده شده جرفایده به معنوی با. درست؟ یکی دیگه هم شما قید زدید بعد هم. جردادن چه بعد تقدیر این بعدا متعلق است به جر یعنی جر فاعل معنوی به این صفت مشبهه جر بعد از اینه که ما تغییر بدیم اسناد صفت رو از این فاعل به ضمیر موصوف میگه فخر عجب به ما ذکره پس خارج شد با آنچه که مسلمف ذکر کرده نه و زیدون زارگون اخوه و الان اوقدن زیدون زاربون اخوهو یا ابوها الان او بدن این خارج شد با قید مستند نیگه اصطحسن از جر و فایل معنن به ها نیست نیکوش امرده نشده جر و معنوی با آن چرا چرا نیکوش امرده نشده چون اگه اضافه بکنیم چی پیش میاد بگید ها التباس بیش میاد و التباس دلیل امتناعه. یعنی اگر ما گفتیم زیدون زار با اخیه الان اوقتاً معلوم نمیشه که اون اخوه و فاعل بوده یا نفهول بریم سید ازلا یحسن ازلا یحسن بل لا یسه میگه زیرا حس نداره بلکه باید بگیم چی؟ صحیح نیستند. هستن از لا یهزون یه سه جر و اخو. به اضافت زارب الی و انیغال زیدون زارب و اخیه. لأنه يلزم هینا ازن، لأنه یلزم هینا ازن، تواحم لزافت علال مفقول. درست؟ تواحم لزافت علال المثال ممتنعن. و غیر و مستحسن باتی که ممتنع باشه مستحسن یعنی میکو شمامرده هم بگی نیست دیگه. ف حاضل مثال ممتنع اون و غیر رو مستحسیم مندون ان ازه و یت داره ی يقدر معنا کرد یعنی افت مندون ان یفرزه و یقط داره تحویل و ان اخو الا ضمیر موصوفه ها الا ها متعدن یاحتمال اضافتها ایلا مفعولها ایلا مفعولها فعال تبدیل ای اضافت ایلا فاعل به اضافت مفعول به اضافت ایلا مفعول فذاریب فزارب فرمثال لیس صفتن مشبهتن لیس صفتن مشبهتن لعدم استحسان جرل فائل لعدم استحسان جرل فائل اعنی اخوه اعنی اخوه به لأجل الالتباس لأجل الالتباس دقت کنید ببینید ولو اینکه گوش گوش ولو اینکه ما نیاییم فرض کنیم که ضمیر ها رو از اخوگو بگیریم اون تقدیر و تحویل ها رو بکنیم ولو اینکه این کار رو نکنیم و اضافه کنیم آه اضافه کنیم ظارب رو برخو اون بعد تقدیر آقای ملا جلال رو در نظر بگیر نگیریم این کار رو هم انجام ندیم این مثال غلط است به چه دلیل به دلیل اینکه شبهه اینکه اضافه شده باشه اسم فاعل بگیر به مفعول خودش رو ایجاد میکنه چرا چون صفت ما متعدی است احتمال داره به فاعل خودش اضافه شده باشه احتمال داره به مقبول خودش پس بنابراین اسم فاعل اضافه به فاعلش نمیشه غیر از اون که من گفتم که شبهه چی چی شبهه اضافه اش به نفس رو هم در خودش دارد اینو داشته باشی حالا اگر بیایم فرض رو هم در نظر بگیریم اینجا آه؟ یعنی ما بیایم ضارب رو از هو چیکار کنیم از اخ جدا کنیم فایلیتش رو بدیم به هو خب بعد هو رو بیاریم تو زاره پنس کنیم باز هم غلط در میاد میدونی چرا؟ به دلیل اینکه غلط دوم میشه اصلا نیاز به این غلط نیست وقتی که غلط اول است دیگه نمیدونیم سراغ دوبمی به دلیل اینکه کسی که آیا برادرش زده به خودش هم میگن زننده یعنی ما الان زاره فایلش کیه؟ اخوه فایلش اخوه وقتی هورو بیاریم مستتر کنیم توی زارب بگیم زیدون ظاره گون خود زید زننده است آیا میشه گفت کسی که برادرش داده خودش رو بگیم نه صحیح بگید نیست صحیح نیست ما اصلاً نمیریم به صورت حالا مثلا یه مثال دیگه من بزنم نگاه کنید زیدون قائمون ابو برای که خوب متوجه بشیدیم مطلب رو زیدون قائمون ابو زیدون قائمان ابو این الان اگر ما بیایم اضافه کنیم بگیم زیدون قائملعق مثل زیدون زارمون اخو نیست التباس بگید ایجاد نمیکنه به چه دلیل به که قائم لازمه مفعول نداره که بهش چیه بگید اضافه بشه مفعول نداره که بهش اضافه بشه داره یا نداره نداره دیگه پس برابری مثل زاربان اخو التباس نیست فقط چی میمونه یکی این که اضافه شیبه نفس شبه دارد یک شبه اضافه شیبه نفس دوم باید اینجا چکار کنیم تقدیر کنیم که ما ابر رو از فاعلیت انداختیم و ضمیر ابر اون ضمیر مذاکره لای رو کردیم فاعل قائم ها یعنی بگیم زیدون زاربان خوبه عب بعد عب رو کرده باشیم العب بعد منصوب کرده باشیم شده قائمون العبه بعد اضافه کرده باشیم مجازش غلط در میاد چرا؟ به دلیل اینکه کسی که پدرش وایستده ها؟ نمیگن خودش وایستده ولی کسی که صورتش زیباست رو میگن نگید خودش دیباز. کتابی که طرقش بازه، بهش میگن به اون کتاب خودش؟ قاضیه مجازیت و قطع اسناد در این صحیح در حسن البصری با ذل ولی در قائمون ابو صحیح نیست گرفتی <تصفيق> یعنی باز داربن اخوه ما الان در داربن اخوه ولو اینکه فرض اضافه و تقدیر و اینها رو نکنیم قطع اسناد رو نکنیم غلطه متعدیس چون با تعدیس مشتبه میشه به چی؟ به و اضافه به نفس داره در قائمون ابوهو بگو چون لازمه ملتبه نمیشه به مفخور ولی مجازیتش صحیح نیست بعد تقدیر تحویل بعد تقدیر تحویل اسنادها ها انه و الاسمیر محصوف پس با مثال مصنف بالای اون مثال زیدون زاربون اخو یه زیدون قائمون ابوه هم ما کردیم اضافه کردیم یعنی فخر عجب ما زکرهو نهو زیدون زاره بان اخو و زیدون زاره بان ابو زیدون زاره اخو از دو جهت غلطه یکی اینکه التباس پیش میاد به مفخور و یکی اینکه اضافه شی به نفس است و اگر فرض فرض تحویل اصناد رو هم بکنیم امتناع سوم پیش میاد امتناع از بم اینکه کسی که برادرش زاربه بگیم خودش زاربه ولی در زیدون قائم ابوه دو تا امتناع هست التباس دیگه نیست یک اینکه ما اومدیم قیامی رو که مال پدرش نسبت دادیم به با انحویلا زمیر محصوب ها میگه با این قیدی که من اضافه کردم این مثال خارج میشه زیدون کاتبون ابوهو زیدون کاتبون ابوهو فرض کنید اون شبه اضافه به نفس رو در نظر نگیریم شبه است دیگه اون شبه اضافه به نفس رو در نظر نگیریم این مثال زیدون کاتبون ابوه اگر ما اضافه کنیم کاتب رو به عب و بگیم چی؟ کاتب و عبیه التباس پیش نمیاد با اون که کاتب متعدیه های گفتی چرا؟ به دلیل اینکه که نمیتونه مفعول کاتب باشه آه؟ مفعول کاتب نمیتونه باشه کتابت بر روی پدر واقع نمیشه کسی پدرشو به خواب نروش بنویسه کتابت بر روی کاغذ و همثال او واقع میشه دیگه اما امکانه این که کسی برادرش رو بزنه زاره با اخیه هست اخ میتونه فایل باشه میتونه مفعول باشه ولی اف در اینجا میتونه فایل کاتف باشه اما مفعول کاتف بگید نمیتونه باشه پس اگر ما گفتیم صفتون نجر و فایلن منن با این باید بره داخل صفت مشبه، داخل تعریفش باید بره یا نه چونها کاتف صفتیه که نیکو شمرده شده جرل فایلش یعنی غلط نیست جرل فایلش چرا غلط نیست چون التباسی پیش نمیاد چون معلومه که اب فایله و مفعول نیست به قرینه عقلی چرا چون عرب هیچ موقع مفعول یعنی مکتوب واقع نمیشه چیزی که کتابت روش باشه پس تعریف مصنف شامل زیدون کاتبان ابوه بگید میشه یعنی باید بگیم المشبهت و اسم الفایل صفتون، یعنی کاتب کاتبی که نیکو شمرده شده جذب فایل من نمیش با چرا؟ چون فایل ملتبسه به مفعول بگید نمیشه به دلیلی که معلومه کتابت روی عب واقع نمیشه بلکه کتابت از عب صادر میشه اما اگر اون مورد آقای ملا جلال رو در نظر بگیریم این غلط در میاد گفت چی گفت بعد تقدیر تحویل اصناد ها هنهای را زمیر موسفه. اینجا اگر ما بخوایم این کاتب رو اضافه کنیم به اب برای اینکه که شبهه اضافه به نفس نشه به خاطر همینم از شبهه اضافه به نفس نمیارن چون ما اونو دیگه از فایلیت چکارش میکنیم خلش میکنیم ما اگر بخوایم اب رو از فایلیت خرع کنیم باید چیکار میکنیم باید های ابوهو ها رو بیاریم در کاتب مستتر کنیم حالا آیا اگر کسی پدرش نویسندگی میکنه و کاتب است میتونیم به پسرش هم بگیم کاتب خیر اصلا مجازش خیلی دوره مثل اون نیست که کسی که صورتش زیباست به خودش میگیم چی زیبا مجاز اونجا واضحه مردم میگن فلانی زیباست اگه بگی کجاش زیباست میگه خب قیافش صورتش اما در اینجا هیچ کسی به کار نمیبره بگن فلانی نویسنده است بگیم یعنی چی بگی باباش قلم به دسته. باباش مینویسه خب میگن باباش می نمیزه به اون چرا این مجاز بعد تقدیر بعد فرز تغییر اصنادش انوهلا زمیر محصوب این در این تحقق بگید ندارد نظام میگه با به مازد توهو زیدون کاتبون ابو خارج شد ببینید در واقع اون چه که آقای گوش کنید در واقع اون چه که ملا جلال اضافه کرد نه اینکه عبارت آقای ابن مالک ناقص بود چون این چیزی که آقای ملا جلال اضافه کرده اینجا و از آقای ابن شام در کتاب و زهشم گرفته همه مطلب رو اینطور به ذهن انسان میذاره که این بعد تقدیر اینجا از هنرهای جناب آقای ملا در صورت که این بعد تقدیر اینجا هست نمیشه خود, ملا خود ابن مالک گفته چی؟ گفته فاعل معنوی فاعل معنوی یعنی چی یعنی فاعلی که از فایلیت خودش قطع شده بوده قبلا فاعل بوده و الان دیگه فاعل بگید نیست این همین رو قبلا هم داشتیم پس بنابر این این بعد از تقدیر تحویل ها انو الها ضمیر موصوفا عباراتون اخرى و شرح معنانه چیز جدیدی بگید نیست صفتن استصح سنه جرفاعل به جای اینکه بگه بعد تقدیر تحویل اسناد و انو اله زمیر به جای این بعد گفته چی ما ابن مالک معنا اون معنا همین بعد تقدیره و چیز جدای از این نگید نیست پس در واقع اگر حتی این هم نمی آمد با قید معنا این چی شده بود حالا چون چون فاعل معنوی یعنی چی یعنی فائلی که فائل بوده ولی الان از فائلیت خلیه شد قبلنم هم این همینو داشتیم وقد یوزافوزا یعنی اسم مفهول الاسم مرتفع این معنن گفت اونی که مرتفع از معنن یعنی در سابق معنفو بوده تو اسم مفهول که الور او محمود المقاصد مشخص کاتبون عبود وست این جواب یک سؤال مقدره این سؤال مقدر اگر یادتون باشه در باب معرب و مبنی و در باب حال گفته شده یعنی این سؤال در هر دو جای قبل رسیده و اون هم این مورب رو معنا میکنن به چی؟ میگن المورب آخر آخرهو به اختلاف ال عوامل او و تبدیرن. میگن مورب اونیه که آخرش به اختلاف عوامل چکار میکنه؟ تغییر بدون لفظن اومدن شبه کردن که اینجا دور لازم میاد گفتن مورب چیه؟ اونیه که آخرش تغییر میکنه به اختلاف عوامل لفظن و تقدیرن اونی که آخرش تغییر میکنه به اختلاف عوامل لفظان و تغییران چیه؟ مورده گودن از این میرین به اون اون میرین به این این دوره عین همین دور رو در بحث حال همین کتاب هم معنا کرد یعنی گفت و جواب ده. هر سه جا همین جا هم باز همین دور رو تصور کردن و حتی ابن نازم پسر آقای ابن مالک که شرحی دارد بر این کتاب گفته پدر من اینجا خوب ننوشته من از تعریف پدرم می میکنم چون دور داره خودم برا خودم یه تعریف میگم هر سجارو یه جواب میدن میگن بابا جون معرب رو ما به اونی که آخرش تغییر میکند بگید میشناسیم اما اونی که آخرش تغییر میکند رو به معرب نمی ولی بلکه اونو از عرب میشناسیم ببینیم عرب چه چیزایی رو آخرشو تغییر میده چه چیزایی رو تغییر نمیده یعنی از معابد دوباره بر نمیگردیم به ما که بشه دور از معرب میریم به اونی که اختلاف پیدا میکنه آخرش لفظا و تقدیرن به عوامل اما اونی که اختلاف پیدا میکنه آخرش لفظا و تقدیرن به عوامل بر نمیگردیم بگیم به چی بشناسیمش به ما میگیم برو از عرب بشناسیم. اینجا میگه چی؟ وستهسان و جرل فائل میگه شما برگشتید گفتید که مشبهه، صفت مشبهه به اسم فائل کدومه؟ گفتید اونیه که جرل فائلش نیکست گفتیم اونی که جرل فائلش نیکست معنی کدومه؟ گفتی عبارت است از صفت مشبهه از این رفتیم به اون، از اون اومدیم بریم میگه نه استهسان جرل فائل به اون ما صفت مشبهه را به صفتون استرسند جرل و فایل معنان به ها میشناسیم اما استحسان جرل فایل معنوی رو به صفت مشبهه بگید نیمیشناسیم اونها عقل ماست ما میگیم صفت مشبهه را به چی بشناس؟ به اینکه میتونه به فایل خودش اضافه شه فایل معنویش اما به من میگی خب اونی که به فایل معنویش اضافه میشه تو چطور بشناسن؟ میگم اونو اضافه بکن ببین مناش درسته یا؟ غلطه اونو از باقه بشناس نه اونو از صفت مشبهه صفت مشبهه رو به اینکه فائلش رو میتونه جر بده فاعل رو بشناس اما اونی که میتونه فاعل معنویش رو جر بده یا نمیتونه تونستن یا نتونستن مستحسن بودن یا نبودن اونو با عقلت بشناس اضافه کن ببین درسته مجازش درسته یا مجازش غلطه اونو دیگه به صفت مشبهه بگو نشناس نگه وستحسان و جلل فایله به ها به انتوضاف به اینکه که اضافه بشه صفت مشبهه به اون استحسان جلل فایل به صفت مشبهه شناخته نمیشه بلکه یدرکو به نظر فیلمان بلکه شناخته میشه درک میشه با تحمل کردن و دقت کردن در معنا. نظر موقعی که با فیمیات به منای تحمل و دقته معنا نگاه کردن نیست نظر با اله به معنای نگاه کرد درک میشه با دقت و تعامل کردن در معنا یعنی الان ما اومدیم کاتب رو اضافه کردیم بعد دیدیم بعد از تقدیر درست نیست از نظر معنا ما دیگه استهسان جر فاعل رو به صفت مشبهه بگید نمی‌شناسید صفت مشبهه رو به استحسان جر می‌شناسید اما استحسان جر رو به آزمایش کردن می‌شناسید پس بنابراین دوری در کلام بگید. خب خواب حال دو سه تا فرق از اسم فائل و صفت مشبه رو ما گفتیم یکی این که اسم فائل دلالت بر حدوث می کند و صفت مشبه دلالت بر سبود یکی دیگر هم همین الان گفتیم که تو تعریف عنوان کردیم این که اسم فاعل صحیح نیست اضافه بشه به فائل معنوی خودش آ بعد از تقدیر تا شبه هم ایجاد نشه اما صفت مشبهه صحیحه بعد از تقدیر بعد از تقدیر درسته چرا چون شبهه اضافه شبه نفسم نداره چون تغییر میگیم که و سوقها و سوقها من لازمن لحاظرین که تاهر قلبه جمیل ظاهره تو اینجا چند تا فرق و عنوان کرده وابا با آتفه است سوقها مبتداست من لازمه لحاظرین دوتا جاره مجرورن هر دو متعلق با عامل مقدرن خبر یعنی سوقها واجبون ثابتن موجود من لازمن یعنی من فعلن لازمن ل زمانن حاضرن دو تا فرق خودش ساختن صفت مشبهه واجب از تو ثابت است بگو من فعل لازم، از فعل لازم و برای زمان حاضر برخلاف چی اسم فاعل که هم میتونه از فعل لازم باشه هم متعدی و زمانش هم زمان حاضر نیست زمانش یا حاله یا آینده است یا گذشته است یعنی برای هر سه زمان صلاحیت داره اما صرفت مشبهه برای زمان حاضر است زمان حاضر کدوم زمانه؟ زمان یکی یه مقدار از گذشته الان و یه مقدار از آینده رو شامله به خاطر این بشمیان سبوت و دبان مثل حسن یعنی زیباه یه مقدار گذشته زیبا بوده الان هست آینده خواهد بود تا یه دوام دارد مخصوص به ایک زمان لذا نمیتونیم بگیم حسنون امسه یا بگیم حسنون قدن یا حتی بگیم حسنون الان غلط است. حسن دلالت و سبود مثاله هو مثالش که تاهر قلبه جمیل ظاهره تاهر من اون روز مثال زدم تاهرون قلبوهو تاهر اگر به معنای این باشه که اینجا نجس بوده آب ریختیم پاک شده میشه چی؟ تاهر اسم فاهر خدوسیه اما تاهرون قلب یعنی قلبش تاهره این چیزی نیستش که به سادگی به دست بیاد و دوام هم داره این صفت مشبه بوده تاهرون قلبوهو جمیل ظاهره جمیل ظاهر یعنی جمیلون هو ظاهرش سی فاسط خب اینم بود جمیل و ظاهر دیگه مثال هو کطاهر با این دو تا مثال یه مطلب رو فهموند اسم فاعل همیشه هم وزن عروزی فعل یادتون هست یعنی یا نیست تو بحث اسم فاعل خوندیم که اسم فائل هم وزن عروزی چیه؟ فعل مزاره خودشه. همیشه. سلاسی یا رباعی، مزید یا مجرد، فرقی نمی‌کنه. اسم فائل همیشه هم وزن. اما صفت مشبهه میتونه هم وزن باشه، مثل تاهر و یطهر، هم وزن عروزی هستن. و میتونه هم وزن بگید نباشه، مثل جمیل و یجمل. جمیل دومیش حرکت داره اما یجمول دومیش چیه؟ ساکن اینم فرقه بگو سوم. یکی فرقی که به صفت مشبه فقط از لازم گرفته میشه اسم فائل اهم از لازم و تدیس صفت مشبه فقط برا زمان حاضره دائمه اما اسم فائل زمان نداره با هر سه زمان جمع میشه فرق سوم. اسم فاعل همیشه هم وزن عروضی فعل مضارعشه ولی صفت مشبهه میتونه هم وزن باشه میتونه هم وزن نباشه که هم وزن نبودنش است لذا اگر جمیل و ظاهر جلوتر ذکر شده بود بهتر از طائران و متخالف و متخالف و, و, و صفت مشبهه اسم الفاعله در اینکه فی سووق هاا یا کو ال لامن فعل لازم لزمن الحاضر، اینکه سف این مشببه نمی باشد ساخت اون مگر از فعل لازم اونم برای زمان حاضر معلوم و فینده ها فرق سوون و فینده ها قط تتكون مجاریت اندل قدر از دارسل فعل مزاره یعنی چی؟ کم و اینکه این صفت مشبهه گاه اوقات تکون مجاریتاً مجاریتاً یعنی موازنتاً مزاره، هم وزن با مزاره میشه مثل چی؟ کطاهر قلبه مطمئن نفسه و قد تکونو غیر مجاریته و گاه اوقاتم غیر موازنتن هم وزن نیست غیر مجاریتن لهو هم وزن با فعل مزارش نیست منظور از کدوم وزن وزن عروزی، موافقت در حرکات و سکون، نه وزن تصریفی یعنی موافقت حتی در حرکات. غیر مجاریت بل حل بل قالب بلکه این قالبم هست نحو جمیل ظاهره مانند جمیل ظاهره که القلب جمیل ظاهره مشخصه. بقلش به نمیسید. و انکانت من غیر سلاسی اینی که گفتیم مجاری میشه و غیر مجاری ماله کدومه سلاسی مجلده و انکانت من غیر سلاسی اگر از سلاسی مجلد بگو نباشه یعنی از مزید باشه یا روایی مجلد باشه انکانت من غیر سلاسی وجب موازنت او. واجب است که هموزم بشه وجب و موازنت و حال المزاره نحو و منتل یعنی فسیح کسی که زبانش بهاست، هاست یه صفتی نیست که به عادی به انسان برسه منطلق قلدسان مطمئن و نفس ها؟ اسم گفت عمل فعل خودش رو میکنه درسته؟ اسم فائل چه کار عمل فعل خودش رو میکرد بدون سر سوزنی تغییر هیچ یک ذره هم تغییر نداره اگر فعلش لازم اونم لازم متعدی به یک مفعول دو مفعول سه مفعول، اونم کذایی که فعله هی اسم و فعل عملی امکان ان هی به معذیه درست و ولی استفه آمنه او ندا اما صفت مشبهه برخلاف فعل خودش عمل میکنه فعلش بگو نمیتونه شبیه به مفغول برداره اما صفت مشبهه میتونه چون گفتیم بعد از تقدیر دیگه بعد از تقدیر تحویل اصنا مجبور میشیم اون کلمه حسن الوج اون الوجه هر رو چکارش کنیم منصوبش کنیم شبیه به مفغول معرفه است نمیشه بگیم تمیزه خب مجبوریم بگیم چی؟ شبیه به مفعول نمیتونیم هم بگیم مفعول چرا؟ چون فعلش لازم بگیم شبیه به مفعول یه قسم سالس درست میکنم میگه و عمل و اسم الفائله المعدا لها علال حد لذی قد خدا باب باباتفه عمل اضافه شده به اسم اضافه شده به الفاعل الفاعل عمل و اسم الفاعل عمل اضافه شده به اسم اسم الفاعل اهل مؤدا صفت اسم فاعل عمل اسم فاعل متعدی متعدی شده آه؟ عمل اسم فاعل متعدی المعدا صفت اسم لها لها خبر عمل است یعنی صحابتون لها عمل اسم فعال متحدی لها برای صفت مشبر است علال حد لذی قد هده علال حد متعلق است با آنچه که لها بهش متعلق انلذی صفت حد است قد هده فعل زمیر نائب و است. میگه عمل اسم فائل متعدی برای صفت مشبه هست بر همون قیاس و منوالی که در اسم فائل گفته شد قد هده یعنی قد اوییه نه بر همون منوالی که در اسم فائل بیان شد یعنی باید تکیه بگید بکنن اعتماد بکنه عمل اسم فائل چی بود؟ امکان انموزیهی به معزلن و ولی استفخامن و حرفن کیه کنه اینجا دیگه نمیتونیم بگیم امکان الموزیهی به مرزله شرط زمان منتفیست چون این لحاظره نه اما شرط اعتماد سر جای خودش چیه؟ هست و عمل و اسم الفائل المعدده ثابتون این ثابتون رو نوش بگه چی؟ بگیم لها خبر است برای عمل ثابتون لها علال حد لذی قد حد دار فی اسم الفائله و هوبال اعتماد و الامازوکر و اون هم اعتماد بر مازوکر بود اعتماد بر زیخبر موسنقیلی موسوف زلحال استفهام نفل بلون شده نه الامازوکر نفل زیدون حسنون الوجه زیدون حسنون الوجه زید مبتدا حسنون چیه؟ خبرش یه کرده بود الوچه شبیه به مفقه زمیر داخل حسن چیه رابطه جو خبر است به محترده چون مشتق دیگه زمیر برمیگرده به سید. این مرحله سوم اون مرحله سا بود زیدان حسنان بگو وچه و وحالا آوردیم تو حسن مستتر کردیم ولی فلا گذاشتیم نصب دادیم این مرحله قبل از اضافه است لذابش میگیم شبیه به مفهول اگه اضافه کنی، اضافه کردیم به شبیه به مفهول دیگه شبهه اضافه شبه به نفس رو هم نداره. زیدان حسنون الوش لاکن لکن نسبه هونه هونه به نیست در صورت معرفه بودن تو این مثال لکن نسب در اینجا چون معرفه است و علفلام داره علت تشبیه به مفهول بنابر تشبیه به مفهولم به، به خلافه هیت سمتا. به خلاف اسم فاعل در اونجا به خلاف این نصب در اسم فاعل به خلافی هی اون میخوره به نصب سمتا یعنی در باب اسم فاعل در باب اسم فاعل نصبش بنابرای چیه؟ مفهولون به بودنه اما در اینجا بنابرای بگو شبیه به مفهوله چون فعلش لازم ببینید اسم فاعل عملش از صفت مشبه قدی چرا؟ بدلیل این شباهتش به فعل بیشتره هم وزنن هم محنن به معنای حال استقبالم میشه تکیه هم می کرد مثل فایل که به فعلش تکیه میکنه به فعل که به فایلش تکیه میکنه اینم به موقع تکیه میکنه همه شرایطش مثل فعل می شد به معنای حال استقبال بود تکیه هم می کرد مثل فعل که به فایلش تکیه میکنه ها و مشتقم که بود به معنای حدوث هم که بود مثل فعل همه شرایط فعلی رو داشت وزنان و معنا یکی بود لذا عملش قوی بود اگر معمولش مقدم می شد عمل می کرد چرا قوی بود اگر حتی اسم فائل مقدر هم بود بگو باز عمل می کرد به اشتغال توش درست بود بگیم چی؟ انا زیدن زاره هو خوندیم مقدمن مؤخرن ظاهرا، مزمرن محخرن همه جور عمل میکرد اسم فائل چون قوی بود اما صفت مشبهه اینطور نیست چرا چون صفت مشبهه شباهت رسونده به اسم فائل اسم فائل شباهت رسونده به فیل شباهتش است با واسطه است لذا اگه معمولش مقدم میشه دیگه عمل نمیکن غلطه معمول صفت مشبهه مقدم میشه و اگر مقدر باشد عمل نمیکنه لذا مثلا بگیم زیدون الوجه یا بگیم زیدون وجههو حسنون وجههو این وجههوی مقدم رو بخوایم. شبیه به مفعول برای یه وجه حسن مقدر بگیریم به اشتغال غلطه مشخص مقدرش عمل نمیکنه نگاه کنیم و سبق ما تعمل فیه و سبق و ما تعمل و فیه مجتنبون و با واطفه سبق مبتداست مجتنب خبرشه. سبق اضافه شده به ما فایلش سبقت گرفتن آنچه که تعمل و صفت مشبهه فیه در او تعمل و فیل زمیر زمیر صفت فایلش و فیه متعلقه به آن یعنی به تعمل و هاشم آید سلبه محصول سبقت گرفتن آنچه که عمل کرده سفت مشبه در اون مجتنبون اشتناب شده باب باب آتفه باز کونهوزا سببیتن وجب معمول سفت مشبه حتما باید سببی باشه سببی یعنی چی؟ سبب یعنی ریسمان یعنی تناب یعنی رشته سببی باشه یعنی معمولش یه ذمیری داشته باشه که برگرده به محصول یعنی باید بگیم زیدون حسنون بگو هو وجه هوو یه هو داره برمیگرده بذاره اما معمول اسم فاعل میتونه سببی باشه میتونه سببی نباشه اجنبی باشه یعنی من میتونم بگم زیدون زاربون امرن مفهولش بشه چی امرن اجنبی میتونم بگم زیدون زاربون اخاهو یا غلام اخو که مفهولش دارایی بکی زمیره که برمیگرده بکی به محصوف یعنی میتونه معمول اسم فاعل دارای زمیر محصوف باشه میتونه نباشه سببی باشه یا عجنبی ولی در اسم صفت مشبهه واجب است که سببی باشه یعنی دارای زمیر محصوف باشه و کونهو زا سببیت وجبه کونهو مبتدا اضافه شده به هو اسمش مستر ناقصه ذ سببیت خبرشه خبر کون است از جهت ناقص بودنش وجب فعل زمیر کون فاعلش این جمله خبر کون است از جهته مبتدا بودنش دو تا خبر داره یک خبر داره از جهت نقصش یک خبر داره از جهته مبتدا بودنش وجب فعل و فاعل جمله خبر خبر کون از جهته بودنش بودنه بیاج کنید و م ما مخالفت في اسم فایل مما مم یعنی از مواردی که باز صفت مشبهه مخالف از با اسم فایل اینه ان سبقا ما تعمل وفيه مجتنبان این که سبقت گرفتن آنچه که اسم فایل میخواد درو عمل بکنه چیه مجتنبه. اجتناب شده چرا ل ها به خاطر فرعیتش چون شباهت مستقیم به فعل نداره شباهت رسونده به اسم فاعل اسم فایل شباهت رسونده به فعل به فرعیته خلافه این به خلاف نگاه کنیم گوش گوش یه نکته بگم. ببینید اگر یاد تو باشه تو باب اضافه تو باب اضافه و ولفن صله و فل مقصصور ان حوزاین انقلاب ها یا ان حسن بعد من گفتم فل مقصور ان حوزاین متعلق به حسنه خب حسن صفت مشببه هست چطور معمولش فل مقصور و ان و مقدم شد؟ صفت مشببه دو نوع عمل داره. یه عملی دارد که به حق صفت مشببه بودن عمل میکنه او گوش کنید، یه عملی دارد که به حق صفت... یعنی کارت سف مشببه بودن نشون میده و عمل میکنه. اون عملش در مرفوع است، یعنی فائرش و در منسوبی که شبیه به، مفهولش یعنی اگه اقشو بگیریم بگیم این روش رو چرا نزددیم میگه من شبیه به مفهول برداشتم من صفت مشفه هم. ولی جار و مجرور و ظرف و تمیز و حال و مستثنا و اینها رو نزد میدن نبه عنوان صفت مشفهه بودن در جار و مجرور عمل میکنه میگه من چون شبیه به فعلم بوی فیلم دارم مشتقه از فیلم یعنی کارت دیگری اصلا صفت مشفهه هم ازمش هم نمیاره. مشخص به عنوان این که من بوی از فیل دارم این کار رو انجام میده مشخص مثل این که مثلا فرض بفرمایید یک دکتر میره در اتاق عمل عمل میکنه پشونه چرا عمل کردی؟ میگه من پزشکم جراح هم متخصصم این, این هم کاردم عمل کردم برای عمل کردن این کارت نشون ولی میاد سر صندوق رای رعی بده میگه چرا رعی میدی میگه من ایرانیم یه کاری به پیزشک و جراح و متخصص بودنش نداره صفت مشبه دو شخصیت داره یه شخصیت مشتقی و بوی فیل داشتن داره که از اون جهت میتونه در جارو مجرول و ذرک و این همه اونا معمول صفت مشبه هستن اما نه از جهت صفت مشبه بودن از جهت مشتق بودنش اما یه سری معمولاتی هم داره از جهت صفت مشبه بودنش معمولش شدن در اونها نمیتونه عمل کنه لذا میگه به خلاف غیر معمولها به خلاف اونی که معمول صفت مشبهه نیست معمول شخصیت صفت مشبهه بودنش بگید نیست به خلاف غیر معمولها کل جار ول مجرور و زرف مثل جار و مجرور و ظرف و اینها که اینها به خاطر صفت مشبهه بودنش معمولش نشدن فیجوز و تقدیم و گوه ها پس جایز از مقدم کردن این غیر معمول رو به صفت مشبهه درست؟ این همین بحث باز اینجا میاد معمول صفت مشبهه باید سببی باشه ولی اونی که معمولش نیست مثلا تمیز تمیز از جهت ابهام شده معموله او لذا دیگه نیازه به زمیر بگید نداره میگیم زیدون حسنون وجهن زیدون حسنون فلمدرسته فلمدرسته دیگه نیازه به زمیر بگید نداره میگه و فی اندلاکونه حوزه است بیگاتن و دومی و بعدیش اینه و اندلاکونه حوزه است بیگاتن به ان اتصل به زمیر موسوفها. به اینکه متصل بشه به زمیر موسوفش لغزان مثل چی زیدون حسنون، علّ و زیدون حسنون وشبوه. معنن نیم زیدون حسنون علّ زیدون حسن و الوجهو معنام یعنی تقدیرن یه الوجهو الان فاعل حسنه دو قول هست در این که اینجا زمیر میخواد دیگه به عنوان رابط الوجهو بعضی میگن الفلام هر از زمیره بعضی میگن بوده الوجهو بگو منهو. یه منهو تقدیر میگیرن میگه نیازه به زمیر دارد اگر زمیر در لفظش نباشه مثل زیدون, الحسن. زیدون حسن و الوجهو ونجا یا باید بگیم الافلام یا باید بگیم منهو او معنی وجبه نهو زیدون حسنون وجبهو برفت این الان زمیر داره زیدون حسنون هو یا الوجبه فرقی نمی کنه چون الوجبهو بخونیم می میشه فائل به حق صفتی مشبهه بودن عمل کرده الوجبه بخونیم میشه شبیه به مفغول بازم به حق صفت مشبهه بودن عمل که بعضی هم میگن علف لام رابطه بعضی هم مثل آهی مولا جلال میگن علف لام قول کفیگینه بلکه ای منهو یعنی ای منهو در تقدیره ای منهو به خلاف غیر المعمول به خلاف اونی که معمولش بگید نیست اونی که معمولش نیست مثل چی؟ جار و مجرور ظرف تمیز حال اینها به خاطر صفت مشبهه بودن معمول نشدن بلکه به خاطر اشتقاق ابحام و اینجور چیز چیزها لذا اینها نیازه به زمیر بگید ندارن اون 18 بچهی که در کتاب سمدیگه خوندید برای حسنان بچه بود از فرده شروع میشه اینجا 36 بچه حواظتون رو جمع کنید درس، دردی ده ماست اونو خوب نگاه کنید تا اینکه اینجا رو بخوانیم و چی میگه؟ و ما کلو ما کلو ما یتمنل مرعوید رکا تجره ریاه به مالاتش تهست صحبانه خیلی خشنگ گفته و تشبیه زمینی هم توشه میگه ما کلو ما ما ما مشبهتون بلیزن کلو ما اسمشه یتمنه المرعو یتمنه فعل المرعو فائلش آید سله هست شده یعنی یتمنهو المرعو الانسانو میگه نیست هرانچرا که آرزو میکنن او را انسان نیست هر چیزی رو که انسان آرزوش رو میکنه یدره کوهو هو که به دستشم بیاره یعنی انسان هرچی که میخواد اینطور نیست که هرچی میخواد به دستم بیاره یدره که هو هرچی آرزو کرد طمئن کرد اونو به دستم بیاره یدره که هو فعل و مفغور فائلش میخوره به المر یدره که هو خوش به ما این جمله محلم منصوب خبر مای مشبهت و بر میگه هر چیزی رو که انسان آرزو میکنه به دست نمیاره میگه مگه میشه میگه آخه نگاه کن تجر ریاهو به مالا تشتهیه از صفنو زیرا بادگاهی اوقات برخلاف اون که صاحبان کشتی کشتی سواران نیاز دارند میوزه کشتی سواران دوست دارند باد از پشت بوزه تجر ریاهو به مالات تشته صفنو تجره ریاباد خیلی اثرها داره ما یک بار خلودت چند سال پیش بود چهار سال پیش بود با یکی از یه خلاف... حوافیم های ملخی این دو ملخی ها می رفتیم می تا جنوب خلیج پارس بعد رفتنی یک ساعت و تقیده چنفاین دقیقه پنجار دقیقه برگشتنی یک چیز رو ده سه ساعت و خورده ای اون خلابانه بودیم چجور شد گفت باد همش برخلاف ما لذا اینطوری کشتی هم همینطوره همه چی؟ حالا این مثال زده میگه تجر ریاهو و ما تشته صفنو یعنی لا تشتهیه از صفنو آید سله از شده صفن جمع سفینه اینو میگن تشبیه زمنی تشبیه چی چی؟ زمینی. یعنی در واقع در عبارت شما عدات تشبیه مشبه مشبهون به بگید نمیبینید ولی در زمن عبارت چی شده؟ تشبیه شده تشبیه شده یک چیز به چیز دیکر چی تشبیه شده؟ آنچه که انسان میخواهد ولی برخلاف میدش به او داده میشود و به دستش نمیرسه تشبیه شده به بادی که موافق باشد و کشتی سواران میخوان و باده مخالف میرسه شاهد سر چیه؟ شاهد سر اینه که میگه هرچرا انسان بخواهد به دست نمیابرد یعنی چی؟ بره بعضشو به دست میاره به دست؟ همش رو به دست از ثانیاتون دوم کل بینهره حالا این عبارتی که ایشون گفت مثلا توی عبارت ان الله لا يحب کلا مختال فخور چجور ترجمه می‌کنید ان الله لا يحب کلا مختال فخور یعنی خداوند متعال دوست ندارد هر آدم پزدهنده و فخفروشی را آ اینه مفهومش میشه چی ده. یعنی بعضیا که فخر میبرشن و بعضیا که پوز میدن خدا دوست داره آه. چیزی نیست بعض اثر تپوس نه نه, نه. هم چیزی اصلا نیست یعنی یه موقع مبادا ایشون باید یه قید به این عبارت میذاد یعنی میگفت چی به شرط اینکه قرینه برخلاف بگیر نداشته باشیم مفهوم یک عبارت مفهوم یک عبارت تا زمانی حجیت داره گوش گوش حالا این مبارس اصولیه اصول فقه مفهوم که از در میاد تا زمانی حجیت داره و میشه بهش استدلال کرد که قرینه برخلاف بگید نداشته باشیم حالا قرینه از هر جهتی بیاد نداشته باشیم مثلا تو قرآن میگه لا مثلا تو سوره نسان لا تکرهو فتیات کن علل بقا. یعنی چنیزان خودتون، دختران خودتون رو بر آ، وادار نکنید. بلی عمل حرام وادار نکن چون یه ده راهی در درآمد داشتن در جهالیه. لا رو بفته یا تو کمال این عادت نت این عادت نت یعنی چی؟ یعنی اگر خودشون دلشون میخواد عفیف باشن، شما وادارشون نکنید. معلومش میشه چی؟ این یعنی اگر خودشون عفیف نخواستن باشن، خودشون دلشون خواست، وادار کنید. مفهوم غلطه اینجا چرا چون قرینه برخلاف داریم که زنا در هر حالتش و وادار کردن به گناه در هر حالتش چیه؟ حرام. اینجا هم غرینه برخلاف داریم که درست لفظ لفظ میگه کل در سیاه واقع شده معناش چیه؟ افاده اینه که همه نه ولی برداره ولی این معنای لفظی با اون قرینه معنوی که داریم از بین میره مفهوم دیگه نداره ان الله لا, لا يحب كلاً مختال فخور یعنی خدا هیچ انسان فخور و هیچ انسان پزدهنده ای رو دوست نداره خوب آسونید باشه مستقع بقدرتب این نون بگاهی داغی اسرد شده این